قبل از تصادف حدود یک سال در هتل خیابان واورد که نزدیک پورت اورلان بود زندگی می کردم. خیلی وقت بود می خواستم این دوره زندگیم را فراموش کنم یا فقط جزئیات به ظاهر بیمعنا را به یاد بیاورم مثلا بیشتر روزها حدود ساعت شش بعد از ظهر مردی را می دیدم که احتمالا از سر کارش برمیگشت از او فقط یک کیف مشکی یادم مانده و رفتار آرامش. یک شب توی کافه بزرگ روبروی خوابگاه دانشگاه با بغل دستی هم که دانشجو به نظر می رسید هم صحبت شدم. در آژانس مسافرتی کار می کرد و اهل ماداگاسکار بود. بین کاغذهایی که میخواستم دور بریزم اسمش را با یک شماره تلفن روی کارتی دیدم. اسمش کاتزکروتزر بود. هیچ چیز دربارهش نمیدانم. جزئیات دیگر این قضیه همیشه درباره آدمهایی اتفاق می افتاد که از کنارشان رد شده بودم و همدیگر را درست حسابی ندیده بودیم، اما مثل معما ذهنم را درگیر می میکردند. همینطور مکانه ها رستوران کوچکی که گاهی با پدرم آنجا شام می خوردیم تقریبا بالای خیابان پشت دست چپ بود. بعدها وقتی اتفاقی از آن محل رد می شدم، هرچه گشتم پیدایش نکردم خواب دیده بودم؟ یا مثلا خانه های کسانی که اسمشان را نمیدانستم، نزدیک روسته که شاید پیدا کردنشان روی نقشه غیر ممکن باشد یا عاشناییم با دختری به اسم ایولین توی قطار شب حتی شروع کردم به نوشتن فهرستی از تمام آن چهرها مکانهای فراموش شده و برنامه های ناتمام با تاریخ های تقریبی مثلا یک روز تصمیم گرفته بودم در دانشکده پزشکی ثبت نام کنم اما هیچ وقت این کار را نکردم در حالی که خودم را مجبور می کردم سر کارهایی را که به درد فردایم نمیخوردند هم بیاورم و هرچه برنامه پادر هوا داشتم جمبندی کنم دنبال روزنه برای نفوذ می‌گشتم و راه های فرار به همین خاطر است که حالا به سنی میرسم رسم که کم کم درهای زندگی به روی خودش هم بسته می شود و راه گریزی نمی ماند سعی می کنم رنگها و حالا هوای فصلی را که نزدیک پورت اول آن زندگی می کردم به یاد بیاورم های خاکستری و سیاه، فضایی خفقان آور، پاییز و زمستانی همیشگی یعنی کشیده شدنم به منطقهی که پدرم اونجا آخرین قرار را با من گذاشت اتفاقی بود رأس ساعت هفت صبح کافی لاروتوند نزدیک یکی از مجتمعهایی که از ساختمانهای آجوری تشکیل شدند و محدوده پاریس را مشخص می کنند. آنجا، در منراش در فکر ای از کمربندی که تازه ساخته شده بود حرف مهمی نداشتیم میدانستم دیگر هم را نخواهیم دید بلند شدیم و بدون دست دادن از کافه لاروتوند بیرون رفتیم وقتی دیدم سمت کمربندی بندی می رود و با آن پالتو آبی آسمانیش دور و دورتر می شود هاجو واج ماندم هنوز از خودم می‌پرسم پایش تا کجا می دورش کنند بده امروز این اتفاق ساده یعنی زندگی در محلهی که آخرین ملاقات ها را با پدرم داشتم مرا به فکر فرو برده. ولی آن موقع اصلا متوجه این موضوع نبودم. دلمشغولی های دیگری داشتم.